لیرازل در حسرت زمین در سرایی که از محتاب رویاها، موسیقی و سراب ساخته شده بود، لیرازل بر خاکی که در برابر تخت پدرش می‌درخشید، زانو زده بود. و روشنایی تخت جادویی در چشمه‌های آبیش می‌درخشید و چشمهایش روشنایی را باز میتاباندند که جادویش را ژرف‌تر می‌کرد. و همچنان که زانو زده بود از پدرش افسونی خواست روزهای کوهن او را آرام نمیگذاشتند خاطره های شیرین پیرامونش پرسه می زدند عشق لیرازل سبزهزارهای سرزمین پریان را سرشار کرده بود همان سبززارهایی که پیش از نوشته شدن تاریخ در کنار گل های جادویی بر آنها بازی می کرد موجودات شیرین و مهربان اسطوره‌ای را دوست داشت که همچون سایه‌های جادویی از جنگل نگهبان بیرون می آمدند و بر روی سبززارهای جادو شده می‌لغزیدند. عاشق هر افسانه و ترانه و می بود که خانه پریان اشرا ساخته بود. و اما همچنان نوای زنگ های زمین که نمی‌توانست از مرز سکوت و شفق بگذرد تنین به تنین در مغزش نواخته میشد و قلبش رشد کوچک زمینی را و شگفتن یا پژمردن یا خفتن آنها را در فاصلهایی که سرزمین پریان نمی شناخت حس میکرد. و میدانست در آن فصلها که یکی پس از دیگری میگذرند آلوریک سرگردان است میدانست اوریون زنده است و بزرگ و دگرگون شده است. و هر دو، اگر افسانه زمین راست باشد، به زودی برای همیشه و همیشه از دستش خواهند رفت. بزودی به دروازه‌های بهشت با صدای زرینی پشت سر هر دوشان بسته خواهد شد. چون میان سرزمین پریان و بهشت هیچ جاده‌ای، هیچ پروازی، هیچ راهی وجود ندارد و هیچ کدام سفیری به سوی دیگری نمی‌فرستند. حسرت گل‌های استکانی و پامچال‌های زمین را داشت اما نمی‌خواست دوباره با پدرش و جهانی که او با اندیشه خود ساخته بود وداع کند. و آلوریک نمی‌آمد و نیز پسرش اوریون تنها صدای شیپور آلوریک یک بار آمد و اغلب گویی اشتیاق‌های غریبی در هوا شناور می‌شد و بیهوده بین اوریون و او میگذشت اشتیاق اوریون در میان ستونهای درخشانی که گمبد سقف را نگاه داشته بودند یا بر فراز آنها شناور میشد و با سوگواری لیرازل اندکی میلرزید و سایه های دریغش سوسو می زدند و در ژرفای بلورین دیوارها محف می و دمی رنگ های بسیار ناشناخته در دشتهای ما را تیره می کردند و با این وجود، اندکی از افسونگری آنها نمی کاستند. چه می توانست بکند که نمیخواست جادو کند و خانه ای را ترک کند که در یک روز ناگذشتنی برایش عزیز بود. در حالی که همزمان با این روزها قرنها همچون برگ بر سواحل زمین میپژمردند. و اما قلبش هنوز گرفتار تارهای ظریف زمین بود که به اندازه کافی نیرومندند آیا براستی به اندازی کافی نیرومند هستند؟ و ممکن است برخی از آنان که نیاز تلخش را به واجه های زمینی برمیگرداندند بگویند که آرزو داشت در یک زمان در هر دو جا باشد و این راست بود. و هرچند چند باید بر آرزوی ناممکن خندید، اما آرزوی او سراسر حاوی عشق بود. ناممکن؟ آیا ناممکن بود؟ باید با جادو کنار بیاییم همچنان که زمین جادویی در میانه سرزمین پریان زانو زده بود از پدرش افسونی می‌خواست و ساتونهای مهالودی که در کنارش سر برفراشته بودند و تنها ترانه می از آنها بگوید از دریغ لیرازل آزرده شده بودند افسونی می‌خواست که و اوریون را در هر کجای دشتهای زمین که سرگردان بودند بیابد و از سرحد شفق بگذراند و به دشتهای سرزمین پریان بیاورد تا در آن دوره بیزمان که در سرزمین پریان یک روز بلند است با او زندگی کنند و آرزو داشت به همراه آنها برخی از باغ‌های زمین یا سواحل بنفشگون یا هفره هایی که پامچالها در آنها میروند، نیز بیایند تا برای همیشه در سرزمین پریان بدرخشند چون افزون نیرومند پدرش چون این توانایی داشتند پدرش با صدای پریانه پاسخ داد با صدایی که به هیچ آهنگی در شهرهای انسانی شبیه نبود و در هیچ کدام از طپه زمینی حتی در رؤیا هم شنیده نشده بود و واجه چنان بودند که می توانستند شکل تپه های را دگرگون کنند یا گلهای نوینی را به شکفتن در سرزمین پریان جادو کنند. گفت من هیچ افسونی ندارم که توانایی گذر از مرز را داشته باشد یا چیزی را از دشت زمینی فرا بخواند. چه بنفشه باشد، چه پام، چال و چه انسان؟ و آن را از سرحد شفق که برای نگاهبانی ما در برابر موجودات مادی بنایش کرده هم بگذراند. هیچ افسونی مگر یکی که آخرین اقتدار قلم روی ماست. ولی رازل همچنان زانو زده بر زمین درخشان که از شفافیت ژرفش تنها ترانه خواهند گفت از او یک افسون را تمنا کرد. هرچند آخرین اقدار شگفتیهای دهشتناکه سرزمین پریان باشد و شاه نمیخواست آن افسون جادویی ترین توانش و آخرین افسون آنس افسون را که در اش حبس کرده بود تلف کند و میخواست آن را در برابر تهدید روزی دور دست و ناشناخته که روشناییش درست ماورای انحنای اعثر میدرخشید و حتی دورتر از بینش شگرف توان پیشگوی خودش بود، نگاه دارد. لیرازل میدانست که او سرزمین پریان را دشتها را واپس کشیده است و همچون پس و پیش رفتن مد به نیروی ماه آن را بازگردانده است تا دوباره با مرز درخشانش مماس بر حسارهای زمینی بر لبه دشتهای انسانها قرار بگیرد. و میدانست پدرش شگفتی غریبتر از شگفتی ماه اجرا نکرده و تنها با حرکتی جادویی مناطق تحت فرمانش را دور کرده است. اندیشید چرا نتواند با جادویی ساده از جادوی ماه به هنگام جزر سرزمین پریان و زمین را به یکدیگر از این هم نزدیک تر کند؟ و این دوباره از او خواهش کرد و را به یادش آورد که پدیدار کرده بود و برای آفرینشانها تنها حرکتی ویژه به بازویش داده بود. از ارکیده جادویی سخن گفت که یک بار همچون کفی گلگون از سخره های سرزمین پریان پایین آمده بودند. از توده های گل های بنفش غریب تپهی که در سبززارهای دره‌های دره های کوچک و تنگ می گفتند. و از شکوه شکوفه گفت که برای همیشه از سبز زارها نگاهبانی می‌کردند، چرا که تمامی این شگفتی ها از آن پدرش بود؟ ترانه‌ی پرندگان و شکفتن گلها به یک اندازه حاصل الهام او بودند اگر چون این شگفتی چون ترانه و شکوفه با موج دستش رخ می‌دادند، می‌توانست با جادو چند دشتی را که آن اندازه به مرز نزدیک بودند از زمین به سرزمین پریان بیاورد یا او که سرزمین پریان را به تازگی تا محل دور زدن ستاره دنبال دار دور برده بود به طور حتم می‌توانست آن را اندکی به زمین نزدیک‌تر کند و دوباره به مرز دشتهای انسان‌ها ببرد شاه پریان گفت هیچ افسون یا تلسم یا شگفتی یا هر چیز جادوینی جز یکی هرگز نمیتواند قلمرو ما را به درازای یک بال در آن سوی مرز زمین بگستراند و یا هیچ چیزی را از آنجا به اینجا بیاورد. و در آن دشتها حتی از توان همین یک افسون هم آگاه نیستند، ولی رازل هنوز به سختی میتوانست باور کند که توانایی های شگرف پدر جادوگرش نمیتواند موجودات زمین و شگفتی های سرزمین پریان را به سادگی به یکدیگر نزدیک کند. شاه گفت تمامی تلسم های من از آن دشت ها با پس زده میشوند افسون هایم هستند و بازوی راستم ناتوان است. و هنگامی که از دست راست توان چنین سخن گفت سرانجام لیرازل سخنش را باور کرد و دوباره از او آن افسون نهایی را خواهش کرد آن گنجینه مدت‌ها اندوخته شدی سرزمین پریان را آن اقتداری که توانایی عمل کردن در برابر سنگینی خشن زمین را داشت اندیشه‌های شاه پریان به تنهایی به درون آینده رفت و درون سالها را کاوید اگر مسافری در شبی در جاده‌های خلوت فانوسش را از دست می‌داد، خطرش کمتر از آن بود که شاه پریان بدین ترتیب آخرین تلسم شگرفش را اجرا کند و بدون آن به درون سالهای مهالود برود. اشکال مبهم و فراوانی از رویدادهای آینده را می‌دید، اما نه تا پایان. لیرازل به سادگی آن تلسم شگرف را خواسته بود. میتوانست تنها آرزوی او را برآورد، اگر تنها انسان بود، به سادگی میتوانست این آرزو را برآورده کند؟ اما خرد پهناورش از سالهای آینده چندان میدید که میترسید بدون این واپسین این اقتدار شگرف با آنها رویارو شود. گفت آن سوی مرز ما موجودات مادی محکم و نیرومند متعددی می ایستند. و می توانند به پستی یا والایی بگرایند چون آنها هم شگفتی هایی دارند و اگر این واپسین این اقتدار به کار برده و نابود شود هیچ افسونی در قلم روی ما باقی نمیماند ماند که از آن به و موجودات مادی تکثیر می و این نیروها را به بندگی میکشند کشند و ما بدون افسونی که آنها را به چیزی بیشتر از یک افسانه نخواهیم بود باید این افسون را نگاه داریم. بدین ترتیب بیشتر برای او دلیل آورد تا فرمان هرچند او بنیانگذار و پادشاه سر, و سر آن سرزمین ها و آنچه در آنها وجود داشت و روشنایی بود که در آن می درخشید. و استدلال در سرزمین پریان امر هر روزه ای نبود، یک شگفتی خارجی بود. با این کار میخواست رویاهای زمینی دخترش را نرم کند. ولی رازل هیچ پاسخی نداد و تنها گریست و اشکایش از شبنم جادویی بودند و سراسر رشته کوههای سرزمین پریان لرزیدند همچون بادهای سرگردانی که با شنیدن اسوات ویولونی که تنینش به ماورای آستانی شنوایی رسیده است می لرزند و تمامی موجودات افسانه‌ای که در قلمروی سرزمین پریان ساکن بودند در قلب هاشان احساس غریبی کردند. چیزی همچون فرو مردن یک ترانه. شاه گفت مگر این بهترین تصمیم برای سرزمین پریان نیست. ولی رازل همچنان میگریست. و سپس شاه آهی کشید و دوباره به امور سرزمین پریان پرداخت. چرا که سرزمین پریان شادمانیش را از آرامش آن کاخ میگرفت که مرکزش بود. و تنها ترانه ها میتوانند از آن بگویند و اکنون برج‌هایش آزرده و نور دیوارهایش کدر شده بود و افسوسی از میان درگاه قوسی شکلش بر سراسر دشتهای پریان و در تنگ رویایی شناور شده بود اگر لیرازل شاه میشد شاید سرزمین پریان دوباره در آن روشنایی نیازورده و آن آرامش ازلی که پرتوهایش همه چیز جز موجودات مادی را رستگار می کند جشن می گرفت اما او که تمامی گنجینه اش را باز و تخلیه کرده بود پس دیگر به چه چیزی نیاز داشتند؟ بنابراین فرمانی داد و صندوقی توسط موجودات سرزمین پریان به پیشگاهش آورده شد و سلح شوره نگهبانی که همواره آن نگاهبانی کرده بود گامزنان پشت سر صندوق آمد صندوق را با افسونی گشود چون با هیچ کلیدی گشوده نمیشد و تومار پوستی کهنی از درون آن بیرون آورد سپس برخاست و همچنان که دخترش میگریست از روی آن خواند و همچنان که می‌خواند های افسون به صدا درآمدند همانند اصوات چندین ویولون که به دست استادانی برگزیده از اعثار بسیار نواخته میشدند. اسواتی که در یک نیمه شب تابستانی در جنگلی با محتابی شگفت با هوایی سرشار از جنون و رمز و راز پنهان شده و بگونه اینا ناپیدا و نزدیک در کمین چیزهای ماورای خرد انسان بودند. بدین ترتیب آن افسون را فرو خواند و نیروها شنیدند و اطاعت کردند. نه فقط در سرزمین پریان، در آن سوی مرز زمین آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سفر کنیم جایی که پری و کوطول ها زندگی میکنن؟ کانال هزار رفسان همونیه که دنبالشبال جایی که داستان های افسان ای سر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه.